داستان چهارم یک روز بلند شپه سرم آفتاب بعد شد بلند شپه پدرم به نظرت سرم را از زیر دحاف بیرون آوردم روشنایی روز چشمهایم را رو زد و باز سرم را زیر دحاف کردم صدای مهربان مادرم دوباره به گوشم رسید مگر نمی روی سر کارت برارگم مگر نمیخواهی سال آینده به مدرسه بروی پول اسم نویسی می خواهی. پول کتاب و کاغذ می خواهی. پول کفش و لباس بلند شو دردت به عمرم یا لبراره نازارم چرا بر نمی خیزی؟ از زیر لحاف چشمایم را باز کردم نور از پشت لحاف کهنه تکه تکه شده بود مثل ستاره ها در شب تاریک آفتاب از قسمت از لحاف که پوسیده بود و پنبه به نداشت میگذشت و به چشمانم می‌زد. گوشه لحاف را کنار زدم. ستاره زیر لحافم هم خاموش شدند. جیکچیک گنجشک ها و نال نال راه آب حوز، صدای قرائت قرآن اموالی که امسایه ما بود و بوی زغال و روغن دنبه حیات را پر کرده بود. مادرم چند قدم دورتر توی ایوان نشسته بود. سماور حلبی در یک طرفش و منقل آتش با جامی که از درونش جز و جز روغن دنبه به گوش می رسید در طرف دیگرش. چادر کلده سرش بود و دسته از موی هنابستش پیدا بود. صورتش به رنگ نان خمیر و بیات بود و داشت با پر چادرش چشمها را که از دود پر اشک بود پاک میکرد. سرم سنم رو برگرداندم. آسمان را نگاه کردم درخت چنار خانه همسایه از دیوار کاهگلی پرلک و پیس سر کشیده بود و تازه آفتاب شاخه های بالایی آن را قرمز کرده بود درست مثل زلف مادرم که از چادر وصل پیندارش بیرون مانده بود غلطیدم مادرم را نگاه کردم که پشت بخارهایی که از سماور به هوا می رفت نشسته بود و با احتیاط انگوش را با آب دهان در می کرد. روی سفره می کشید و دانه های شکری را که بر زمین ریخته بود بر می داشت و می خورد. کاغذ های خالی قیف مانند چای و شکر کنار سفره افتاده بود. تکی نان سنگک تازه در کنار نانهای شب مانده درون سفره بود. یک دستمال آرد کنار مادرم بود. او می خواست با روغن دنبو و آرد و شکر بجی که نوعی کروچه کرمان شایی بود درست کند تو اکبر برادر کوچکم ببرد توی کوچه و بفروشد مادرم به جلو جای من نگاهی انداخت و در همان حال تکی نان سنگک تازه جدا کرد و به دهان گذاشت و باز بلند تر صدا زد چرا بیدار نمی شوی عزیزکم جانکم یا علی بگو امروز روز اول تعطیلی تابستانی دور میدان شهرداری الان شلوغه اگر کاری گیرت نیفتد چه می کنی ها؟ سال دیگر نمیخواهی به مدرسه بروی؟ یالا یالا برا رکم امسال میروی کلاس نو خرچش گران تره برخاست. برخواست آمد و لحاف را از رویم کشید بلند شدم چشمم را مالیدم لبه حوز دست و صورتم را شستم و رفتم کنارش نشستم دوتا چاهایی برای من و خودش ریخت تکه نان تازه را جلویم گذاشت با او گفتم خودت هم از این نان تازه بخور مادرم گفت: نه نه نان بیات با چای مزه میده نان تازه را تو بخور تا ته شکمت را بگیرد و تا ظهر گرسنه نشوی من از نان تازه خوشم نمیآید تا چایم را خوردم مقداری نان توی دستمالی پیچید نان پیچ را برداشتم نگاهی به ایوان انداختم دو برادر و خواهرم خواب بودند جای پدرم خالی بود مادرم متوجه نگاه هم شد و گفت بابات صبح زود رفت برای باغ. تا سه چهار ماه دیگر او را نمیبینیم حرفی نزدم و به راه افتادم به کوچه رسیدم صدای مادرم را شنیدم فاطمه بلند شو، یک جفت کلاش داری که باید امروز رویش کار کنی یالا، اکبر اصخر یالا برخیزید یالا به میدان که رسیدم آفتاب تازه پهند شده بود بناها عملها و شاگرد بناها دور میدان را پر کرده بودند سیگار میکشیدند و حرف میزدند شوخی میکردند و گاهی دست به یقه میشدند و آن وقت بی رحمانه سر و صورت یکدیگر را خونین و مالین میکردند آرام و رمیده کنارشان ایستادم یکی از آنها خودش را خاراند دستش را به زیر بغل برد بیرون آورد بین دو انگشتش چیزی بود که با اهدیات بدون آنکه توجه دیگران را جلب کند نگاهش کرد. یک لحظه سرگردان ماند. اما زود آن را لایه توتن سیگارش گذاشت و سیگار را پیچید. کبریت کشید. نکه سیگارش پاکی کرد و ترکید. چهرهی مرد به خنده فروخورده ای باز شد. شادی بچگانه در صورتش دوید و زیر لب گفت لاکردار بدملد هرچی خون داشتم خورده، با گامهای لرزان خجول و ناشی به گوشه ای رفتم و کس کردم. پیشترها پدرم مرا زیر دست استاد حسین سفت کار اما زمستان گذشته که استاد حسین از مرز سلمورد، دلهوره و نگرانی آزارم می‌داد که پیش چه کسی کار کنم. بعد از دو تا از همکلاسی هم که مثل من شاگرد بنایی می شنیدم که نازوکاری آسان تر است. نشانی دور میدان شهرداری را به من دادن. مردی در پیاده روی میدان بادکنک میفروخت چوب بلندی در دستش بود و نوک چوب یک بادکنک قرمز و دوتا سبز آویخته بود قرمز را خیلی باد کرده بود و سبزها بی باد و پلاسیده بودند مرد فریاد میزد آی گن شیطان آی گن شیطان دو سه نفر خندیدند و یکی گفت هرچی باد بوده کرده تو اون قرمزه جوان لاغری که کنار سطل آشغالی نشسته بود با صدای نازکی گفت مثل شکم حبیب بشکه است پیرمردی که گویی دهانش پر از آردن خود بود با آهنگی خفه گفت اون سبزها مثل شکم ما هاست. بادکنک فروش دور شده بود در این موقع مرد چاقی نک و نک کنان و عرقریزان از دور پیدا شد کارگران او را شناختند میرزا حبیب بود که اسمش را گذاشته بودن حبیب بشکه. زنجیر طلای ساعتش روی شکم بزرگش بازی می کرد. صورتش گرد و براق بود و مثل بادکنک پربادی تکان می خود. هر روز خودش برای بردن کارگرهای ورزید و کارکن می آمد. کارگرها دورش را گرفتند میرزا از میان آنها سه نفر را جدا کرد کارگری که سبیل پرپشت و صورت پر می داشت به من گفت میرزا به اندازه پنج نفر می خوره می بینی چه شکمی داره؟ خندیدم و حرف معلم ادبیاتمان به یادم آمد. چاقیشان از لاغری مردم است. کارگرها دوباره هجوم بردن به طرف میرزا حبیب. دو نفر به هم تنه زدند و یکی از آنها توپخ خورد. کلاه از سرش افتاد و در زیر دست و پای کسانی که برای کار دور میرزا را گرفته بودند افتاد. با یک خیز بلند شد و برگشت و یقه کارگری را گرفت که در کنارش بود و مشتی حواله بینیاش کرد. خون از بینی طرف مقابل روان شد و او هم با یک حمله آستین کت ی حریفش را از بیخ کند. مرد بیاستین عقب عقب رفت و خواست فرار کند اما ایستاد. آن یکی که آستین میان دستش بود و خون روی سیبیلش را رو پوشانده بود، دستی به بینی خود کشید و نگاه کرد. چشمش که به خون افتاد با تمام وجودش از بند دل فریاد زد آی آجان آی حوار آستین را پرت کرد و به طرف خیابان پا به دویدن گذاشت مرد بی رنگش پرید جمعی دورش را گرفته بودند غرورش اجازه نمی داد که فرار کند شاید هم فکری به خاطرش رسیده بود چون آهسته به گوشه میدان رفت و با مشت محکم چند بار به بینی خود کوبید و فین کرد ولی را که میخواست از بینیش بیرون نیامد مثل گوشت کوبی که روی پیاز بکوبند محکمتر به بینی خود زد و فین کرد باز خبری نشد کارگرها و مردم رهگذر دورش را گرفته بودند و انتظار میکشیدند و چشم‌ها را به سوراخ‌های دماغش دوخته بودند هرکس چیزی میگفت بدبخت مثل اینکه خون ندارد رگ‌هایش پر از چلمه آنکه شپش توی سیگارش گذاشته بود گفت مگر شپشا خون برای آدم باقی می‌گذارند. دیگری نیگری گفت محکمتر به همانطوری که زدی تو قپوز یارو یکی جواب داد آخه او دماغ مردم بود این دماغ خودشه پیرمردی که آبنبات نبات و دستمانی به سرش بسته بود گفت بسم الله به مولای دین علی که من تا حالا اینجور دماغ غرصی ندیدم و نشنیدم چای دارچین فروشی که بساتش را روی زمین گذاشته بود و تماشا می‌کرد گفت دماغ فیله پیرمردی عینکی که کنار میدان دکان عطالی داشت و آنجا ایستاده بود گویی که چای دارچین فروش کفر گفته باشد از زیر عینک نگاهش کرد و گفت اگر دماغ فیل هم بود الان داغان شده بود حواست کجاست امون اصرد بعد چند قطر خون از بینی مرد بیرون زد او خون را؟ به سر و صورت خود مالید پاسبان از دور پیدا شد هنوز در کنار دیوار ایستاده بودم هر وقت که به سوی صاحب کار یا بنایی هجوم می‌بردند من هم به دنبالشان میدویدم ولی کمتر به من راه می‌دادند دوباره سر جای اولم برمیگشتم آنهایی که کاری گیرشان نیامده بود، گوشه نشسته بودند و به سیگارشان پک میزدند و چهره غمزدهشان در پشت ابری از دود پنهان میشد میدان و خیابانهای اطرافش شلوخ میشد مردم میامدند و میرفتند زنها برای خرید، بیکارها برای پرسه زدن، دخترها و پسرها با لباسهای تمیز و نو در میان جمعیت فلو بودند به هم دیگر سلام میکردند، چشمک میزدند، قیمت اجناس را میپرسیدند، میخندیدند و سر به سر هم میکذاشتند. به بستنی فروشی نقش میدان میرفتند، بیرون میامدند، در حالی که باغلوا و نوشابه هایشان را نیم خورده جا میگذاشتند. شاد و شنگول بدون حراس از آینده، فارغ از غم پول اسم و کتاب و کاغذ و مهمتر از همه نان. دختر و پسری دست در دست هم از کنارم گذشتند چشمشان به لکه های خونه روی پیاده رو افتاد. دختر گفت: وا این چیه؟ کسافت پسر جواب داد چیزی نیست از این طرفی ها حتما این عمله برای کسی مرغ سربریدند. یقه پسر تا روی نافش باز بود زنجیر کلافتی به گردن داشت. شلوار تنگ و چسمانی ازضلات سرهنش را نشان میداد. دختر هم با شلوار تنگ زلف کوتاه، علامتی روی سینهش آویزان بود که مسلسی بود و خرمهرهی در وسطش قرار داشت من آنجور چیزی را روی گردن مادگاه خالج ایران که امسایه دیوار به دیوار من بود دیده بودم یک لحظه همه چیز را فراموش کردم حالتی به من دست داد احساسی بین تنفر و دوست داشتن خودم را به جایان پسر می دیدم دست دختر را گرفته بودم و دور میدان می چرخیدم. پرواز می کردم اما صدای آشنایی در گوشم پیچید. صدای معلم مهربانم امروزه متها در دست یک عده بچه باز هست در دست یک عده هم جنس طلب این است که میبینید لباس پسرها را تن دخترها و لباس دخترها را تن پسرها می و البته در کلاس شما هستند کسانی که خرج یک روزشان به اندازه خرج یک ماه خانواده دیگر است و چه معلم خوبی بود. سخنانش از دلش برمیآمد. پرشور و هیجان، گویی که سخنانش شعله جانش بود، میسوخت و روشنایی می‌داد و همین بود که به دل می‌نشست. همیشه به کسانی که زحمت می‌کشیدند و پیشرفت می‌کردند، کتابی جایزه می‌داد از کتاب‌های خوبی که خودش انتخاب می‌کرد. من دو بار از آن کتاب‌ها گرفته بودم. نصفه سال غیبش زد. سر کلاس ما بود که صدایش کردند و رفت و دیگر او را ندیدم. به جای او معلم دیگری آمد که پشت میز می نشست و پس از آنکه یک نفر انشا میخوااند سرش درد می گرفتفت. را میفرست پی قرص سردرد و خودش چرت میزد. کلاس ساکت و آرام و به و زندگی میشد. کسی هم کاری به کار او نداشت. سر برج حقوقش را میگرفت و زیر میز آن را چند بار میشمرد. نگاهی هم تکنان خشکی روی یقه کتش دیده میشد. گوشه میدان نشسته بودم چشم به راه کسی که بیاید و به سر کارم ببرد احساس می کردم که چقدر معلم قبلی را دوست می داشتم و چگونه همچون یک شهاب در آسمان تیره زندگی من و همکراسی هایی چون خودم پیدا شد و رفت و ناپدید شد با خودم می گفتم هر چه به سرش آمد آمد و تمام شد ولی آیا میتوانند محبت او را از دلم و سخنان پرمه و دلنشینش را از سرم بیرون کنند؟ نه، نه. ولی چرا؟ مگر اینکه قلب و مغزم را بیرون بیاورند و پرت کنند روی آسفالت خیابان و با لگد لهش کنند؟ تازه وقتی که جاروکش پیر آن ها را همراه زباله‌ها در گوشه میدان در زیران درخت توت بریزد و درخت میوه بدهد و پرندگان از آن بخورند هر پرندهی بر هر درختی و در هر خانهی آوای معلم مرا تکرار خواهد کرد به هیجان آمده بودم و از خود بیخود می شدم که ناگهان متوجه گوشه میدان شدم شهریار یکی از هم هایم را دیدم که به سویم می آمد او لوس و نونور بود و از خانزاده های شهر اگر مرا میدید دیگر توی مدرسه ولكنم نبود هزار جور حرف در میآورد و خوشمزگی میکرد تند خودم را در پشت یکی از کارگرهایی که بلند شده بود و کتش را می تکان تا برود پنهان کردم در دلم گذشت اگر مرا ببیند دیگر باید به با آن دبیرستان نروم شهریار با پیراهن توری سفید بدن نما نزدیک میشد هنوز مرا ندیده بود کارگر داشت میرفت. من در کنارش به راه افتادم و پنهان از چشم شهریار به این طرف خیابان رسیدم او میخواست به پیاده رو بیاید که ناگهان یک تاکسی در کنارش ترمز کرد راننده با سیبیلی از در رفته سر از تاکسی بیرون آورد و با لحجه تهرانی غنیز در حالی که لحجه کردی هم با آن بود فریاد زد شوهر می‌کنید عزیز جان و گاز داد و رفت با شتاب خود را به گوشه‌ای انداختم ساعت نزدیک ده بود. پریشان کنار دیوار نشسته بودم. میخواستم گریه کنم. اگر کار پیدا نمی‌شد، اگر دست خالی به خانه می‌رفتم، اگر روزهای دیگر هم به همان ترتیب می‌بود. توی این فکرها بودم که دستی به شانه هم خورد. بلند شدم. استاد بنای جلوم ایستاده بود. لاغر و رنگ پریده. لای ناخن‌هایش گچ رسوب کرده بود. در میدرسوتی بهتن داشت که پر از لکه های کوچک و بزرگ دوغاب بود مثل نقاشی های جدید از غاب وصله سر زانو دستی به رنگ زرد بیرون آمده بود و کمک میطلبید. دست مثل دست خود بنا بود لاغر با انگوشت های کشیده دو سر لکه به شکل کبوتر از کنار شلوار مرد در میان افق سرخ وصله سرزانویش در پرواز بودند سرم را پایین انداخته بودم و برای یک لحظه این تصاویر از نظرم گذشت. صدایی سرفه بنا بلند شد و گفت: اسمت چیه پسر؟ علی اشرف. بیکاری؟ آری. بچه مدرسه‌ای؟ آری. کلاس چندی؟ میرم کلاس نه. کار بلدی؟ نازوکاری. آب دهانم رو قورت دادم و با دو دلی گفتم: آری بلدم به خدا. بنا با تعجب گفت پچه دیگر قسم می خوری؟ معدب بود. حرکاتش هیچ شباهتی به شغلش نداشت. دستمالی در دستش بود که عرق صورتش را خشک می گویی دویده بود. دوبره بنایی و علک و شمشه را از دستش گرفتم. به دوش انداختم و در پیش روانه شدم. از پشت سر او که میرفتم به یاد معلم خط افتادم. در بین راه بنا پرسید پسر کی هستی؟ پسر مشه سیف سیفالله کدامه؟ سیفالله دراز؟ نه دراز نیست کارگره میره باغ زمستان هم آهنگری میکنه والا نمیشناسم. پس از چند قدم بنا دوباره پرسید خانه کجاست؟ در طویله هر دو ساکت شدیم از پیچ کوچه ای گذشتیم اولاغی با دو مشک دوغ از وسط کوچه میگذشت یکی از کُردهای دهات دنبالش بود و فریاد میزد. آی دو آی دو چند تا بچه شهری از سوی دیگر کوچه ها فریاد زدند آی دوی باو گتا و فرار کردند دُک فروش دمخ شد با زنجیرش به جان خر افتاد و گذشت استاد یا الله گفت و داخل خانه‌ای شدیم خانه بزرگ بود انبار را می‌خواستند دوغاب بزنند روبروی انبار در طرف دیگر حیات ساختمانی سه طبقه قرار داشت. یکی از پنجره های طبقه دوم باز بود. مردی با لباس خواب روی تخت خواب کنار پنجره نشسته بود و بیرون را تماشا می کرد. خوابالوده از بطری کنار پنجره چیزی نوشید و دوباره دراز کشید. کلفت خانه آمد. دستهایش از کار زیاد چون دو تا لبوی قرمز بود. انبار را نشان داد و رفت. مقداری گچ گوشه انبار ریخته شده بود. بنا گفت اشرف بلدی کشته بسازی؟ آری آری بلدم. خب خب تو از این گچ علک بکن و کشته بساز تا من بروم از این زن پول بگیرم و از بازار گل سفید و سریش بخرم. گفتم باشه استا. بنا رفت. گچ رو علک کردم و توی تشت بزرگی ریختم و آب هم رویش. این اولین بار بود که آن همه گچ آب می گرفتم. شروع کردم به به هم زدن گچ خودش را می گرفت و سفت می شد بازوهایم خسته شده بود و ازولاتم کشیده میشد. گچ به گوشه های تشت می چسبید و کنده نمی شد هر دلم ریخت پایین ترسیدم با فشار گچ های سفت شده ته تشت را کندم و گوشه ناخون انگشت کوچکم شکست باز هم با تمام نیرو خمیر را به هم زدم لبه تیز تشت مچم را برید. خون روی سفیدی گچ دوید. میان دو کتفم درد میکرد و دردش به سوی کمرم میدوید و تیر میکشید. قلبم تون تون میزد. از پنجره انبار چشمم به بیرون افتاد. مرد دوباره بلند شده بود. از آن بطری که اسم خارجی رویش بود نوشید. شکم سفید و دون به از زیر لباس خواب دیده میشد. دوباره دراز کشید. احساس کردم که بدنم سست می شود. به خود نهیب زدم. ناگهان فکری به خاطرم رسید. دل به دریا زدم و سطل آب را میان تشت خالی کردم و تند و تند گچ را به هم زدم. دانه های عرق صورتم را پوشانیده بود. ابروهایم خیس شده بود و عرق به چشمانم می ریخت. گوشه لبهایم از عرقی سرد و شور پوشیده شده بود. زبانم مانند تخت خشک بود. باز هم خمیر گچ را به هم زدم. گچ واداد و نرم شد. اما گلوله های کوچک و سفتی توی خمیر مانده بود که هر چی می کردم صاف نمی شدند. از زیر دستم می سریدند. آخرش هم خمیر صاف نشد. استاد از بازار آمد. پاکت سریش و گل سفید را به کناری گذاشت و رو کرد به من که خیز عرق بودم و سرم را زیر انداخته بودم. با خستگی از من پرسید حاضر کردی؟ آری، آری. استاد دستش را داخل کشته گچ کرد و بیرون آورد. با چشم از تعجب گشاده شده رو کرد به من و گفت: اشرف، اشرف تو گفتی بلدم، اینکه همش گلوله گلوله شده، به سوزه هی hey, لادین. اما او برخلاف استاد حسین کتکم نزد. اگر استاد حسین بود حتما دو سه تا مشت میزد توی صورتم شاید از ششمان ترسان و شرمگینم هم خجالت کشید سرم را زیر انداختم عرق روی پیشانی هم نشسته بود این دیگر عرق شرم ساری بود تا ظهر استاد گلوله های ناصاف کشته را گرفت گلسفیت را خیسان دو سریش را با کمک من با یک جاروب در آب حل کرد و همه را با کشته گچ داخل کرد مخلوط را در صافی ریختیم و دوغاب را حاضر کردیم بوی خوش قرمه سبزی و بوهای خوش دیگری که نمی شناختیم از آشپزخانه آن طرف حیات به دماغم می رسید مرد توی پنجره هنوز خوابیده بود دلم مالش می رفت چند بار بیرون رفتم و سایه دیوار را که روی کف حیات افتاده بود اندازه گرفتم تا ببینم چقدر به ظهر مانده. به نان پیچم که زیر خاک کنار باغچه چال کرده بودم سر زدم. چالش کرده بودم تا نرم بماند. هر بار که به با آن سر زده بودم حوض برم داشته بود که باز کنم و لغمه ای بخورم. اما زود زیر خاکش کرده بودم و با خود گفته بودم اگر استستا ببیند پردا به سر کار نمیبرتم. میگوید شکم است. ظهر که شد؟ استاد یک تومن به من داد و گفت پنج قران برای نهارت پنج قران هم برای من سکن بخر کاسه میان توبره را با خودت ببر توش و بیار برای خودت هم هرچه دلت خواست بخر کاسه را از توبره بیرون آوردم و راه افتادم از میان حیات بوی برنج صاف کرده می آمد کلفت خانه برنج نیم پخته را ریخته بود روی تیجه و داشت آب سرد رویش می ریخت بخار داغی از روی برنج برن دلم میخواست یک مشت حسابی از برنج بخورم آب خوشرنگی مثل شیر از زیر تیجه در میآمد و توی سوراخی کنار حوز میرفت خرید کردم و برگشتم کاسه سکنجبین را به استاد دادم رفتم و نان پیچم را از زیر خاک بیرون آوردم گوشه انبار کنار تشت دوغاب نشستم دوریال روغن نباتی و ریال خورما خریده بودم تا با نان بخورم تا ظهر استاد هیچ نگفت جز صدای قلم که با دوغاب به دیوار میخورد هیچ صدایی در انبار به گوش نمیرسید جام جام دوغاب جلو دست می بردم. مرا تماشا میکرد و با صدای نازکش می میگفت اشرف اشرف تو گفتی بلدم و سکوت به دیوارهای انبار نشسته بود ناهار که تمام شد استاد سکنجبین زیادی تحکاسه را به من داد تا بخورم ابتدا نگرفتم اما با لحنی تند گفت بخور تعارف نکن یالا کار داریم پسر بچه هستی خوب نیست نخوری باز هم صدای شلپ شلپ قلم بود و دوغاب و همان سرزنش های او و خستگی عصر کارمان زودتر تمام شد توبره را بستم و استاد و من دست و صورتمان را شستیم شمشه را از بند توبره گذراندم و لک را سر شمشه کردم و به دوش انداختم کلفت آمد و مزدمان را داد استاد پول را گرفت و حرفی نزد رفتیم توی راه استاد رو کرد به من و گفت به چند تا خانه سری بزنیم شاید برای فردا کاری داشتن دنبالش به راه افتادم به خانه ای رسیدیم او در زد. زنی سر کشید استاد سلام کرد و گفت، خانم کارتان حاضره؟ گچمش خریدین؟ پردا بیا این کار بکنی؟ زن خودش رو از دید ما کنار کشید. بشقابی که در دست داشت، حجاب سرش کرده بود و از پشت در گفت، نه استاد جان، نه کی حسره گلکاری داره؟ آقا گفته بعد خبرتان میکنم. دیدم که استاد رنگ به رنگ شد و سفید شد. خمیدگی پشتش بیشتر به چشم می‌خورد، برگشت. دیگر نگاه هم نکرد داشتیم میرفتیم که پرسید فردا دور میدانی؟ آری همون جا هستم خب خوب اگر کاری ماری داشتم میام عقبت بچه کم روی هستی نمیتوانی کار پیدا بکنی خودم میام سراغت عیبی نداره استا چند؟ کم کم هوا تاریک میشد از پیاده رو دنبال هم میرفتیم صورتم را پشت توبرهی روی دوشم پنهان کرده بودم اوستا گفت بیا برو این پول رو خرد بکن دوتو من بردار پنج قران هم زور بردی عیبی نداره خرج کتاب و دفتر داری خدا برکت بده یک تومانی به من داد که خرد بکنم آن طرف خیابان دست فروشی پشت قاب آینهش نشسته بود بریتو آدم سیگار داشت با توبرهی روی دوشم با دباس پارهی که پر از شتک‌های های دوغاب بود نزدیک دست فروش شدم دستم رو دراز کردم هنوز دهان باز نکرده بودم که دست تمیزی با یک اسکناس نوع بیستومانی روی بساط فروشنده پیدا شد بند ساعت تلایش با دستهای سفیدش جنگ می کرد آقا، یک بسته سیگار وینستان صدا را شناختم یک که خوردم برگشتم شهریار بود که با تمسخور نگاه هم می